مصنوی معنوی مولوی برنامه 148 قصه هلال که بنده مخلص بود خدای را صاحب بصیرت به تقلید پنهان شده در بندگی مخلوقان جهت مسلحت نه از عجز چنان که لقمان و یوسف از روی ظاهر و غیر ایشان بنده سایس بود امیری را و آن امیر مسلمان بود اما کور داند اما که مادری دارد لیک چونی با وهم در نارد، اگر با این دانش تعظیم این مادر کند، ممکن بود که از اما خلاص یابد. که اذا اراد الله به عبد خیرا فتح عین قلبه لیوبسره به همال غیبه. چون شنیدی بعضی اوصاف بلال بشنوکنون قصه ضعف هلال از بلال او پیش بودن در روش خوی بد را بیش کرده بود کشش نه چطو پسرو که که هردم پستری سوی سنگی می روی از گوهری آنچنان کان خاجه را مهمان رسید، خاجه از ایام و سالش بررسید. گفت عمرت چند سال است ای پسر، بازگوب و درمدزد و برشمر. گفت هجده، هفته، یا خود شانزده، یا که پانزده، ای برادر خوانده گفت واپس واپس ای خیره سرت، باز می رو تا به اسه مادرت. حکایت در تقریر همین سخن آن یکی اسب طلب کرد از امیر. گفت رو آن اسب اشهب را بگیر گفت آن را من نخواهم گفت چون گفت او واپس روست و بس هرون سخت پس, پس می رود او سوی بن گفت دمش را به سوی خانه کن دم این استور نفست شهوت است زین سبب پس پس رود آن پر است شهوت او را که دم آمد زبان ای مبدل شهوت اقبیش کن چون ببندی شهوتش را از رقیف سر کند آن شهوت از عقل شریف همچو شاخه که ببری از درخت، سر کند قوت ز شاخ نیک بخت. چون که کردی دم او را آن طرف، گر رود پس پس، رود تا مکتنف. هب اسپان رام پیشرو نه سپس راو نه هرونی را گراو گرم را چون جسم موسای کلیم، تا به بهرینش پهنای گلیم، هست هفتصد سال ساله راه آن حقاب که بکردو اعظم در سیران حب. همت سیر تنش چون این بود، سیر جانش تا به الین بود. شخصواران در سباقت تاختند. خربتان در پایگه انداختند. مثل آنچنان که کاروان می رسید در ده آمد، دره را باز دید. آن یکی گفت اندرین بردل اجوز تا بیاندازیم اینجا چند روز. بانگ با آمد نه بیانداز از برون وانگهان اندرات و اندرون هم برون افگن هران چفگندنیست در میا با آن این مجلس سنیست هلال استاد دل جان روشنی سایس و بنده امیر مؤمنی سایسی کردی در آخر آن غلام لیک سلطان سلاتین بندنام آن امیر از حال بنده خبر. که نبودش جز بلیسانه نظر. آب و گل می دید و در وی گنج نه. پنج و شش می دید و اصل پنج نه. رنگتین پیدا و نور دین نهان. هر پیمبر این چونین بود در جهان. آن، مناره دید و دروی مرغ نه. بر مناره شاهباز پرفنه. وان دوم میدید دید مرغ پرزنه. لیک موین در دهان مرغ نه. وان که او ینظر به نور الله بود همز مرغ و همز مو آگه بود. گفت آخر چشم سوی موینه تا نبینی مو به نگ شاید گره آن یکی گلدید نقشین در وحل واندگر گل دید پر علم و عمل تن مناره علم و طاعت همچو مرغ خواه سهصد مرغ گیرو یا مرغ مرد اوست مرغ بین استو و بس غیر مرغ می نبیند پیش و پس موی آن نوری است پنهان آن مرغ که بدان پاینده باشد جان مرغ مرغ کان موی است در منقار او هیچ آریت نباشد کار او علم او از جان او جوشد مدام پیش او نه مستعار آمد نوام رنجور شدن این هلال و بیخبری خاجه او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت و واقف شدن دل مصطفی علیه السلام از رنجوری و حال او و افتقاد و ایادت رسول علیه السلام این هلال را. از قضا رنجور و ناقص شد هلال مصطفى را وعی شد غماز حال ز رنجوریش خاجش بی خبر که بره او بد کساد و بی خطر خفته نه رو آخر آخور هیچ کس از حال او آگاه نی آنکه که کس بود و شهنشاه کسان عقل صد چون قلزمش هر جا رسان وحیش آمد رحم حق غمخار شد که فلان مشتاق تو بیمار شد مصطفی بحر حلال باشرف رفت از بحر عیادت آن طرف در پی خورشید وعی آن مه دوان وان صحابه در پیش چون اختران ماه میگوید که اصحاب نجوم للسرا قدوه وللطاغی رجوم میر را گفتند ک سلطان رسید او ز شادی بی دل و جان برجهید بر آن ز شادی زد دو د کان شهنشه بهر آن میر آمد است چون فرو آمد ز غرفه آن امیر جان همه افشاند پامزد بشیر پس زمین بوس و سلام آورد او کرد رخ را از طرب چون ورد او گفت بسم الله مشرف کن وطن تا که فردوسی شود این انجمن تا فزاید قصر من بر آسمان که بدیدم قطب دوران زمان گفتش از بحر اتاب آن محترم من برای دیدن تو نامدم گفت هم آن تو خود روح چیست هین بفرما که این تجشم بحر کیست تا شوم من خاک پای آن کسی که باغ لطف توستش مغرسه پس بگفتش کن حلال عرش کو همچو محتاب از توازو فرش کو آن در بندگی پنهان شده بحر جاسوسی به دنیا آمده تو مگو کو بنده وا ماست این بدان که گنج در ویرانه هاست ای عجب چون است از ساقم آن هلال که هزاران بدر هستش پایمال، گفت از رنجش مرا آگاه نیست لیک روز چند بر درگاه نیست صحبت او با سطور و استر است سایس است و منزلش این آخر است در آمدن مصطفی علیه السلام از بحر عیادت هلال در سطورگاه آن امیر و نواختن مصطفی هلال را رضی الله عنهو. رفت پیغمبر بر اغبت بهر او اندر آخر و آمد در جستجو بود آخر مزلم و زشت و پلید و این همه برخاست چون الفت رسید. بوی پیغمبر ببردان شیر نر همچنان که بوی یوسف را پدر. موجب ایمان نباشد معجزات بوی جنسیت کند جذب صفات معجزات از بحر قهر دشمن است بوی جنسیت پی دل بردن است قهر گردد دشمن اما دوست نه دوست کی گردد به بسته گردنی اندر آمد او ز خواب از بوی او گفت دان درون، زین زینگونه بو از میان پای استوران بدید دامن پاک رسول بی ندید پس ز کنج آخر آمد غژغژان، روی بر پایش نهاد آن پهلوان پس بر روی بر رویش نهاد بر سر و بر چشم و رویش بوسه داد گفت یا رب با چه پنهان گوهری ای غریب عرش چونی خوشتری گفت چون باشد خودان شورید خواب که دراید در دهانش آفتاب، چون بود آن تشنه کوگل چرد، آب بر سر بنهدش خوش می برد، در بیان آنکه مصطفی علیه السلام شنید که عیسی علیه السلام بر روی آب رفت فرمود لو ازداد یقینه له مشا علی الحوای مو بر سرش گیرد فرات. کیمنی از غرقه در آب حیات گوید احمد گر یقین افزون بوده خود هوایش مرکب و معمون بوده همچون من که بر هوا راکب شدم در شب معراج مستزهب شدم گفت چون باشد سگ کور پلید جست او از خواب خود را شیر دید. نه چونان شیری که کس تیرش زند، بلزبیمش زبیمش تیغ و پیکان بشکند. کور بر اشکم رونده همچمار، چشمها بکشاد در باغ و بهار. چون بود آن، چون که از چونی رهید. در حیاتستان بیچونی رسید گشت چونی بخشن در لامکان گردخانش جمله چونها چون سگان. اوز بیچونی دهدشان استخان در جنابت تنزن این سوره مخان ز چونی غاصل ناری تو تمام تو بر این مصحف منه کف ای غلام گر پلیدم ور نظیفم ای شهان این نخانم پس چه در جهان تو مرا گویی که از بحر ثواب غاصل نکرده کرده در حوز آب از برون حوز غیر خاک نیست هر که او در حوز ناید پاک نیست گر نباشد آبها را این کرم کو پذیرد مرخبس را دم بدم وای بر مشتاق و بر امید او حسرتا بر حسرت جاوید او آب دارد صد کرم صد احتشام که پلیدان را پذیرد و السلام ای زیا الحق حسام الدین که نور پاسبان توست از شر و تویو پاسبان توست نور و ارتقاش ای تو خرشید مستر از خفاش چیست پرده پیش روی آفتاب جز فزونی شعش و تیزی تاب پرده خورشید هم نور رب است نصیب از وی خفاش است و شب است. هر دو چون در بعد و پرده مانده اند یا سیهرو یا فسرده مانده اند. چون نبشتی بعضی از قصه هلال داستان بعدر آر اندر مقال. آن هلال و بعدر دارند اتحاد، از دوی دورند و از نقص و فساد. آن هلال از نقص در باطن بریست، آن به ظاهر نقص تدریجاوریست. درس گوید شب شب تدریج را، در تعنی بردهد تفریج را. در تعنی گوید ای اجول خام، پایه پایه بر توان رفتن ببام. دیگ را تدریج و استادانه جوش، کار ناید قلیه دیوانه جوش. حق نقادر بود بر خلق فلک در یکی لحظه بکن هیچ شک. پس چرا شش روز آن را درکشید؟ کل و یومن الف و آم، ای مستفید. خلقت طفل از چه اندر نهمه هست؟ زان که تدریج از شعار آنشه است خلقت آدم چرا چل صبح بود؟ اندران گل اندکندک می فزود نه چو ای خام ککنون تاختی تفلی و خود را تو شیخی ساختی بردویدی چون کدو فوق همه کو تو را پای جهاد و ملهمه تکیه کردی بر درختان و جدار بر شدی ای اقر اک، هم قر وار شد مرکبت سرو سهی لیک آخر خشک و بی مغزی توهی رنگ سبزت زرد شد ای قر زود زان که از گلگونه بود اصلی نبود داستان آن عجوزه که روی زشت خیشتن را جندره و گلگونه می ساخت و ساخته نمی شد و پذیرا نمی آمد. بود کمپیر نود ساله کلان، پرتشن نجروی و رنگش زعفران. چون سر سفره روخه او توی توی لیک در بود مانده عشق شوی ریخت دندانهاشو مو چون شیر شد قد کمان و هر حسش تغییر شد عشق شوی و شهوت و هرشش تمام عشق سید و پاره پاره گشته دام مرغ بیهنگام و راه بیرهی، آتش پر در بون دیگ توهی. آشق میدان و اسب و پای نه، آشق زمر و لب و سرنای نه. هرس در پیری جهودان را مباد، ای شقیه که خداش این هرس داد. ریخت دندانهای سگ چون پیر شد ترک مردم کرد و سرگینگیر شد این سگان شست ساله را نگر هر دم دندان سگشان تیزتر. پیر سگ را ریخت پشم از پوستین این سگان پیر اطلس پوش بین عشقشان و هرسشان در فرج و زر دم به چون نسل سگ بین بیشتر. این چونین عمری که مایه دوزخ است مر قصابان غضب را مسلخ است چون بگویندش که عمر تو دراز می شود دل دهانش از خنده باز این چونین نفرین دعا پنداردو، چشم نگشاید، سر برناردو، گر بدیدی یک سر موی از معاد، اوش گفتی این چونین عمر تو باد.